عوض بالله السمی العلیم من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و آله تاهری خدمت عزیزان خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض بکنم ان که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه بلا کسندی هم به دور مایید. تشکر میکنم از اینکه این دو سه جلسه همکاری فرمودید و کلاس رو در روز پنجشنبه این ساعت کرد. انشالله هفته آینده جلسه نیست و سر جل... وقت خودش روز چهارشنبه کلاس شما رو در خدمتتون خواهیم بود پس بنابراین تا وقتی که جلسه بخواهد باشه من اطلاع خواهم داد ولی از هفته آینده در ساعت مقرر خودش کلاس خودمون رو خواهیم داشت پ بنابراین انشاءالله هفته آینده چهارشنبه در خدمت خواهیم بود خب ما در مبحث خودمون به بیت شانزدهم از قصیده آیمتنبی در مدح مدرب دم‌وار رسیدیم. اینجا میگه که عنفول کریم نه دنیا تارکون، فی عینیه، العددال کثیره قلیلا. انا فلو من منن دنياته قارن كن في عينه العدد الكثير اناف و انا صح با تا هم هست مصدر یعنی کراهت انا یعنی کفه یعنی زیر نرفت که راحت داشت رست پس کریم الکریم اینجا به معنای اسیله یعنی آدم بانژاد نه به معنای بخشنده دنیعه از دناعت یعنی پستی تاره کن ترکه دو تا من دو تا استعبال داره یکی تاره کن از ترکه به معنای کرد باقی گذاشت یکی هم ترکه داریم به معنای جعله قرار داد اناف مبتداست اضافه شده به علی کریم اناف و علی کریم مند مند جان و متعلق به انافه دیگه بقیهش مشخص حالا تارکون خبر اگر تارکون به معنای یه مفعولی باشه فی نهی العدد کسیر قلیلا فی عینهی و به تارکون میشه العدده میشه مفعولش الکسیره میشه صفت عدد قلیلا باید حال میشه ولی اگر دو مفعولی باشه که اینجا دو مفعولی است و اون درسته و به معنی جایلان هستش العددل میشه مفعول اول الکثیر صفتش قلیلن میشه مفعول دوم. تارکن یعنی جایلان پس انف و انفه یعنی زیر بار نرفتن کراهت داشتن استنکاف کردن انفر یعنی ف یعنی قبول نکرد زیر بار نرفت استنکاف کرد ترجمه بواحت ولی این بیت مقصودش چیه؟ داره یه قاعده رو بیان میکنه. میگه که زیربار نرفتن زیربار بار, زیر بار دنیام و پستی نرفتن از طرف شخص اصیل، آدم پدر و مادردار، اون کسی که به قول خودمون، پست نیست. اینجا یعنی آدم غیر پست آدم اسیر. اون که سرش به تنش میارزه زیر بار نرفتن یک جنین کسی زیر بار نرفتن چی کراحت داشتن او از چی از پستی قرار میدهد او را قراردهنده است تعداد زیاد را یه لشکر بد کم تو چشمش فی اینهی ها برمیگرده به کریم میگه یا آدم شجاع یا آدم عصیل یه کسی که برای خودش جایگاهی داره این کراحت داره از پست بودن پستی فرار کردنه ترسیدن، اینجا یه ای آدمی که سرش به تنش میارزه کراحت داره از پستی یعنی از اینکه فرار کنه و این قرار میده او را که اینطوری باشه که تعداد زیاد ولو یه لشکر رو کم ببینه چشم خودش لذا فرار نمیکنه حمله میکنه. پس چی گفت نگاه کنید میگه این که بدش میاد از پستی قرار میده یه لشگر رو یه تعداد کثیر رو تو چشم او کم درست چرا چون این آدم اصیل زیر باره دناعت و پستی نمیخواد بره پس کراهت از دنیعه از طرف آدم کریم اصیل، قرار دهنده است تعداد کثیر را در چشم او قلی. وقتی یه نفر تعداد زیاد رو کم ببینه چکار میکنه فرار نمیکنه حمله میکنه بعضی ها گفتن این بیت در واقع توضیح برای اون شیره که این آقای بدرم و اممار و لشکر رو دید ولی باز حمله کرد میگه چرا؟ میگه چون شیر تو قاموسش فرار کردن نیست دنی از کراحت داره از این پستی لذا لشکر وسیر رو هم هیچ میبینه حمله میکنه. خواه شد؟ چون بالا هم یادتون باشه؟ گفت وکعن نه و که درت و عین فدن و لا یبصر الخط الجلیله جلیلا قول چشمشو خورد و حمله کرد بعد میگه این شیر مثل شغال مثل روباه نیست فرار کنه این کراهت داره از پستی این شیر اصیل درست شد این نژاد شیره که راحت داره از پستیه پستینکه ف... ترسید و دردس همین قرورش قرار میده در چشم او تعداد زیاد رو هم کم لزا نمیترسه هرا حمله بکنه گرفتید این در توضیح کار شیر باشه که داشتش توی عبارات قبلی هم همین رو میگفت این خوبه یعنی در واقع این داره میگه چرا شیر با اینکه این, این لشکر بدرابنامار رو دید باز حمله کرد میگه چون شیر شیر از پستی فراریه قبول نمیکنه اینکه پستی داشته باشه اونم پستی ای و اشکال فرار رو بدون تنش بخره این باعث میشه که یک لشکر رو هم یه تعداد کم میبینه حمله میکنه خب این قشنگه که در مورد شیر باشه بعضی آمدن گفتن نه این در واقع مدح این آقای بدر بن عماره که این بدر ابن عمار یه لشکر رو به قول خودمون تو چشش کم میبینه چرا چون غرور داره اصیل شجاعه حالا یه شیر که دیگه چیزی نیست ولی به نظر میاد که شیر رو داره دیگه. پس ان افول کریمه من ادنیت دنیه گفته میشه دنیه هم گفته میشه ولی دنیه توی عبارت هست که همزه تبدیل به یا شده یا در یاد خان شده دنیه دنیه از دناعت یعنی پستی کراحت شیر که بزرگ و اصیل است از پستی پستی اینجا یعنی فرار و ترس قرار میدهد. در چشم او تعداد کثیر را هم قلید قرار می‌دهد. تو چشمش یه لشکر سه نفر انگار که سه نفر هم حمله از پس قرور اس نزاشت. فرار کنه و لشکر رو کم دید حمل کرد انا فول کریم من از دنیعت تار فی عین العدد الا عددا بین قلیل رو کثیر قلیل صنعت تضاد و تارکن هم گفتیم اینجا به معنای جا احلان. درست شد یکی از معانی ترکت جعل است کشمی از افعال تسییر یعنی بر سر مبتدا و خبر در میاد مبتدار رو میکنه مفعول اول خبر رو میکنه مفعول دوم اینجا هم العدد مفعول اول شده ولیلا مفعول دوم شده الکسی رو صفت عدد. خب اینو فهمیدید پس قرور فرد اسیل و پدر و مادردار با نشاد قرور یا آزاده از اینکه که بار پستی بره این قرور باعث میشه که او یه لشکر رو هم کم ببینه حمله کنه و فرار نکنه وله آروه مذازون و ولیسه به من حد من خافم ما قیلت مذاز یعنی معلم یعنی دردآور مزاز یعنی مؤلم یعنی درداغر مؤلم موجع از وجع یعنی درد مؤلم از علم یعنی درد اسم فاقل میگم لغت که بتونید حفظ کنید مزاز یعنی مؤلم از عالم و یعلم و یعنی موجه از اوجع یوجه و یعنی به درد آورد خطف یعنی مرگ یعنی حلاک در واقع مثل بیت قبلی همون مضمون رو دنبال میکنه خود چی میگه؟ میگه ول آراه مزازون آر یعنی چی؟ یعنی عیب یعنی ننگ خب برای یه آدم شجا بالاترین عیب و ننگ چیه؟ فرار میگه این آر خیلی درد آور است آر فرار ننگ فرار شغال فرار کنه فراش آر نیست روباه فرار کنه آر نیست اما شیر در ره ننگه براش. تو تو شیری تو انفول کریمه انفول کریمه به ندنیت داشتی تو کریم بودی باید از پستی در میره تو اسیدی تو شیری نباید زیر بار پستی بری میگه این آر و ننگ دردابر است میگه ولیسه و نیست به خواه این این با زایده است بر سر خبر لیسه در آمده که ما گفتیم بابای زایده بر سر خبر لیسه میاده لیس به خائف من حتفهی من حتفهی متعلق به خائفه من اسم لیس است خوافه مما ما قیله من ما متعلق به خاف است قیله هم سله ما من ما قیله یعنی من ما قیله فی حالا نگاه کنیم ما اول و لیسه و نیست اسم نیست و نیست کسی که می ترسد خافه. مما قیله از آنچه که گفته میشه در موردش کسی که می ترسد از حرف مردم که در موردش بگن یعنی می ترسد از اینکه مردم در موردش بگن در رفت. ترسید کسی که می ترسه از حرف مردم نیست این شخص ترسو خائف از مرگ خودش یعنی کسی که از حرف مردم می ترسه میره زیر اینکه بمیره تا این حرفو نشونه از مرگ خودش نمی ترسه یادمن اصیل اینه این ننگ و آر براش دردابره چون از حرف مردم میترسه بنابراین از مرگ خودش نمیترسه حاضر بمیره ولی حرف مردم رو نشنه قشنگ و ولیسه به خائف من حتفهی یعنی من حلاکهی من موتهی چرا از مرگ نمیترسه؟ چون از حرف مردم میترسه و لیزه به خواهفین و هرگز نمی از مرگ خودش کسی که می از آنچه که گفته خواهد شد به ما قیله. از آنچه که مردم میگن می ترسه به خاطر همین هیچ وقت از مرگ خودش نمی ترسه یه ضرب المثلی در بین عرب ها هست این از اون ضرب المثل این رو درست کرده بعض میگن اون زربول مثل از این درست شده حالا کار نداری ولی این زربول مثل است. میگن من عنف مند دنیت من, من انف مند دنیت لم یهجم لم یهجم انل منیت منیته انافه بالا داشتیم دنیه داشتیم میگه من انافه منت دنیه کسی که از پستیها ها فراریه بدش میاد از عیب و ننگ کسی که از عیب و ننگ و آر بدش میاد زیر بار عیب و ننگ و آر نمیره نمیه جمعه منیه این در نمیره از دست مرگ این از دست مرگ فرار نمیکنه با مرگ رو در رو میشه میگه می کسی که از پستی بدش میاد ها این از مرگ دیگه روگردان نیست مم. با مرگ دست پنجه نرل میکنه هر که تابوس خواهد جور هندوستان کشد تو میخوای زیر ای و ننگ نری خب پس بنابراین باید خودتو به خطر بندازی زیر مرگ بری حتی حمله کن من انفم این لم یهجم اهجم یعنی کنار کشید لم یهجم کنار نمی کشد از مرگ ها زیر بار مرگ بود خب اینم وشنگ بود ولی آروم از زازون و این ننگ خیلی در داوری که بگن شیر بود در لب شیر اگه در میره این برای شیر خیلی ننگه در داوره زیرا کسی که از حرف مردم میترسه که چی بگن و چی میگن ها که بگن شیر در لفت. کسی که از حرف مردم در مورد او عیب و اشکالات مردم در مورد او میترسه این دیگه از مرگ خودش نمیترسه حاضر بمیره تا مردم در موردش این چیزا رو نده. این مثل شغال و روباه نیست که حرف مردم براش ازش نداره جونش رو بر داره و در میره وله آروم از زازون و لیسه به خائفن من حتفهی من خوافم ما قیل خب به خائفن گفتیم بازایده است یعنی لیسه خائفن بده تحکیده چون بسر خبری لیسه بازایده برای تحکید میاد من حتفهی حتفم یعنی حلاکهی موتهی من خوافم ما قیل کسی که میترسه از آنچه که گفته میشه یا یعنی از آنچه که در موردش گفته میشه میترسه این دیگه از مرگ خودش نمیترسه حاضر بمیره ولی مردم در موردش بعد نکره چرا؟ چون این ننگ که ترس و فرار باشه برای او خیلی دردابد سنگینه تحملش سخته خب اینم هم قشنگ بیت بعد رو نگاه کنید سبقل تقا اکهو به وسبت هاجمن لولم تصادم سادمهو لجازک میلا حمله همون شیر رو میده دیگه سبقل تقا اکهو سبقل تقا اکهو به وسبت حاجمی ها حاجمن ها لولم تو سادمه لجازک میلا المصادمه سادمه یو سادمه المصادمه درد شو یعنی المصادفه یعنی برخورد کردن تصادم یعنی تصادف درد شو مصادمه باب مفاعله است دیگه بین اسنه اینا. یعنی برخورد کردن م? ما تو فارسی هم تصادم رو بکنم هم تصادف یعنی به هم خوردن میلم که مشخصه دیگه درست شد میگن تا اونجایی که چشم کار میکنه شما چشتون تو بیابون تا اونجاییی که میبینه اون قدری که چشم میتونه خوب ببینه اونه بهش میگنه یک میل جمعش امیال و میول، درست شد حالا خشمه اصلا مایل اصلا اینگه نیست ولی میل یعنی یک حد دیدن یعنی تا جایی که چشت کار میکنه ترشوفه واسیشی میشه دیگه میگه تا جایی که چشت کار میکنه آدم واسد میگه تو عربی یک میل آدم واسد ببینید توی این قصه ای که ما داریم میخونیم این شیر بوده که یه شکاری کرده بوده این لشکر آمده از اونجا رد میشده او فکر کرده شکارش رو میخوان ازش بگیرن چون شیرم بوده این لشکر رو هم هیچ حساب کرده ننگ و الان اگه مثلا فرض کن یه روباهی بود شکار کرده بود یه یوسفلنگی بود شکار کرده بود میدید که یکی قوی تر میاد شکار رو و میاد اما او نه او حمله کرد شو؟ بعد که حمله کرد به طرف بدرب نعمار حمله کرد که جلوی لشکر بود بدرب نعمار هم با یک تازیانه او رو به خاک انداخت این چیزی بودی تا اینجا خوندید حالا نگاه کن میگه این شیره صدقه سبقت گرفت انتقا اکهو التقا مستره کاف مضاف و فایلشه اونها مفعولشه یعنی سبقت گرفت از برخورد کردن تو با او یعنی تو شیرتر از اونی تو میرفتی رو می میگرفتی ولی اون زودتر این که تو به طرف او بری با او برخورد کنی اون بر اقدام تو سبقت گزید عجله کرد در حمله و قبل از اینکه تو با او برخورد کنی او به طرف تو اومد یعنی اینطوریه نگاه کن نگاه به جایی التقا اکهو ان تل ان با فعل مزاره میشه مستر دیگه آه؟ مستر معبد. سبق ان تلتقیهو ان تل مفعول سبقه مثل انتقا. سبقه یعنی چی؟ پیش دستی کرد سبقت گرفت ام تلتقیه او سبقت گرفت از چی از اینکه تو با او برخورد کنی با چی سبقت گرفت به وسبت هاجمن وسبه یعنی جهید وسبه یسبو پرید جهید هاجم یعنی هجوم کننده با یک حجوم حجوم کنندهی با یک پرشی که با یک جهیدن یک حجوم کننده حملور شونده با یک حجوم و یک یورش ها جم یک یورش حجوم کننده یک کسی که هجوم میکنه اون یورشش با یورش یک حملوری که خودش باشه بر تو سبقت گرفت از اینکه تو با او ملاقات کنی میگه یک حمله ناگهانی کرد چرا چون میخواست قبل از اینکه تو به او حمله بر بشی او حمله کنه خب حمله کرد میگه جوری که حالا این جالب لولم تصادمهو انقد به شدت حمله کرد لولم تصادمهو اگر تو باهاش برخورد نمیکردی تو جلوش نبودی که اومد خورد به پشت اسب تو که تو با شلاق زدی لولم تصادمهو اگر تو باهاش برخورد نمیکردی له جازک میلا جاز یا جوزه یعنی عبور کرد جاوزه اگر تو جلوش سبز نمی شدی تو جلوش نبودی اینقدر به شدت پریده بود از تو میگزهش یک میل اون طرف در می یعنی میرفت تا جایی که چشکار می کرد اونجا پرت میشد. می شد تو جلوش بودی که زدی انداختیش اینقدر میگه به شدت حمله کرد جوری که اگر تو جلوش نبودی با تو برخورد نمیکرد یک میل اون طرفتر میافتاد میگذشت از تو یک مایل یک میل تا چش کار میکرد رد میشد و اون طرفتر میافتاد خب حملی کردن اون شیره رو گفته التقا هو به وسبت حاجمی لو لم تصادم هو لم سادم هو. فعل شرط لوه لجاز که جزای شرط فعل ماضی مصبت هم جزای لو بشه لو شرطیه لام میگیره فعل ماضی مثبت جزای لو شرطیه بشه لام میگیره گرفته که میل یعنی از تو اوور میکرد یک مال. یک میل که گفتیم منظور یعنی مسافتی که تا چشم توی میشه در پیش پیشتازی کرد از برخورد کردن تو با خودش صدقت گرفت از برخورد کردن تو با خودش با یک یورش حجوم کننده جوری که اگر با تو برخورد نمی کرد تو جلوش نبودی انقدر شدت پرش داشت جوری که اگه تو جلوش نبودی لجازه که میلا از تو عبور می کرد تا چش جا کار می کرد می اون طرف در از تو عبور می کرد یک میل گفتی میل هم اون مسافتی است که چشم انسان بتونه بیدید فاجعه سباقال ترا اکه هو سباقال ترا اکه هو به وصبت عال جمی لولم تصادم رو نجاؤزه که میل. خو خزلت و قوته و قد کافته و فستن سرت تسلیم و تجدید خب این حمله کرد به شدت هم حمله کرد قبل از اینکه تو به او حمله ای کنید. جوری که اگر تو جلوش نبودی میرفت یک مایل اون طرف در میافتد. درست شد؟ این بیتره. خزنت ها قوته خزنه او یعنی خانه او خیانت کرد با او. مخزول؟ یعنی کسی که بهش خیانت شد. و؟ تنها گذاشته شد کمکش نشد خزلت خو قوته او خوب چی می‌کنه شیره. قوته او اصلا اصلا خود خزل یخذلو یعنی کمک نکرد تنها گذاشت خزلت خو قوته او یعنی اون قوه و توان شیریش اون زور بازوش به اون خیانت کرد کمکش نکرد خزلات او قوته کافه هو یعنی باش مبارزه کرد مفهول ارهاب یعنی مبارزه با تروریسم با چاق مکفه ولمیه یعنی مبارزه با بی مقابله با بی سو بلدید استنسال، استنسره یعنی طلب کمک استنسره یعنی باب استفعال دیگه یعنی طلب یاری استنسر تو زیدن یعنی از زید طلب کمک کرد تسلیم یعنی تسلیم شدن یعنی در مقابل کسی دست دستو بالا بردن تجدیل یعنی به خاک انداختن جدلهو جدلهو یعنی اونو به خاک انداختن واقعای جداله یعنی عرض زمین تجدیل یعنی به زمین انداختن فکر میکنم الان دیگه راحت بتونید شعر رو معنا کنید حالا نگاه کنید لغات رو من گفتم میگه که خزلت و تو رو زور و بازوش اونو یاری نکرد بهش خیانت کرد قوت و توانش به دادش نرسید رو یاری نکرد تنهاش گذاشت. خب وقت کافه پهو و به تحقیق تو هم باهاش مقابله کردی زور و بازوش ها تو هم قابون گوشش تو هم باهاش مقابله کردی مبارزه کرد زور و بازوش به دادش نرسید او رو تنها گذاشت ها بهش خیانت کرد تو هم باهاش مقابله کرد پس وقتی زور و بازوش به دادش نرسید چیکار کرد؟ فستن سره پس کمک خواست کمک خواست از کی؟ از تسلیم یعنی تسلیم محبوب. کمک خواست از تسلیم شدنش خب. اینجا دیگه رفت صلابه اینکه دستارو ببره بارد تسلیم ش. دیده حیوانات وقتی جنگ میکنه یکیشون شکست بخوره حالا شیرم باشه غیره من در سر مینداز پایین یا بقول خودمون خودشو کچکتر میکنه یعنی دیگه من قبول کردم من باختم کمک خواست از تسلیم شدنش و تجدیل و به خاک انداختن خودش شیرها موقعی که یکیشون قویست و اون یکی میبینه نمیتونه مقابله کنه در مقابل مقابله و خودش میندازه زمین تسلیم اون هم انقدر غرور داره مشیر مشیر غالب انقدر غرور داره و بزرگه دیگه اینی که دست و بالا برده بود خودش انداخته به خاک زمین خورده رو دیگه کاری به کارش نداره میگه او در مبارزه با تو زور و بازوش به کارش نیمت. خذلت حقوق ب. فقط کافهه بود و تو هم سخت باهاش مبارزه کردی باش در افتادی. پس ف او کمک خواست از اینکه تسلیم بشه از تسلیم شدنش کمک گرفت و از به افتادن خودش از اینکه خودشو به خاک ب. یعنی فستن سر ان تسلم من و ان دله نفسه بود کمک خواست از اینکه که خودشو تسلیم کنه و از اینکه که خودشو به زمین بندازه دیگه ما خاک تویی توی شیر اینطوریه حالا که این یه راز بقاها اینا نگاه کنید وقتی درگیر که میشن اون شیری که مغلوبه، اگر سرو بندازه پایینو به خاک بیفته اون یکی دیگه کاری به کارش نداره میفهمه این دیگه تسلیم شد اینطور نیستش که به خاک افتاده رو حمله بیشتر کنه و بتره فضلت خو قوته فضلت خو فعل و مفعوله هو میخوره بشی قوته فاعلش بعد کافه و حالا که تو هم باش مقابله کردی فستن سر تسلیم و تج... تسلیم یعنی تسلیمه و تجدیل یعنی تجدیله به خاک انداختن خودش که خودش جلوی تو به خاک بندازه و تسلیم اون خودش رو تسلیم تو کن به آقا ما باختیم ما زمین خورده یه از این کمک هاست ها چون زور و بازوی نبود دیگه قشنگ بود درست شد. نگاه کنید به درد رو عبذت منيتو و يديه و انقهو فكأنما صادفته مغلولا كعبذت منیتهو یدیه و عنقهو ف کأنما صادفتهو مقلولا کأنما بلدی دیگه کعنا حروف مشبهتون بلفعله اون ما که بر در درویان میگن مای کافه جلو عملشو میگیره میشه پس گویا دیگه وقتی عمل نمیکنه بعدش فعل هم میاد صادفتهو صادف و گفتیم دیگه مثل سادم و, سادم و یعنی برخورد کردن رو در رو شدن سادف یعنی رو در رو شدی با او برخورد کردی با او مقلولن مقلول یعنی کسی که دستش رو با و زنجیر بستن دست بسته مشخص شد مقلول یعنی مقیدون بالقل اونی که با قل و زنجیر دسته شد بستن قلم یعنی قید دیگه پس مقلول یعنی دست بسته یک قبضت قبض یقبزو یعنی چی یعنی بست قبض کرد یعنی بست دیگه گرفت قبضت منیه توهو منیه یعنی مرگ داشتی تو بالان یدیه مفعول قبضت و عنقهو عنق انغ عنقه اینجا مین وزنشه ولی یدعیه و نشه میکنیم آن قهوه و قبلتیت یهیه و اوننا قو یعنی گردن. میگه مرگش بسته بود دست و گردن او رو کردنشون دختتر پایین دستاشم رو زمین پهن کرده بود. مرگ، دست و گردن او رو بسته بود. یعنی نمیتونه حمله کنه، نمیتونه فرار کنه. خودشو انداخته بود رو خاک، ها؟ تسلیم. دستاشو کشیده بود، گردنش رو انداخته بود پایین رو. قبر زدی. منیتو هو بسته بود. مرگش، که مرگو چشش میدید. تو باش برخورد کرد، تسلیم شده بود و خودشو به خاک انداخت مرگ و جدوی چشش میدید مرگ بسته بود دوتا دست و گردن او رو بودون در اسیر و دستشو میبستن به گردنش دیگه قول میکردن دیگه که نبتیز میگه مرگ اونا اسیر تو کرده بود دست و گردن او رو در قول و زنجیر کرد بسته بود فکن نما پس گویا سادفتهو انگار تو با او برخورد کردی در حالی که اون دست و گردنش بسته است دست بسته است انگار دست بسته آمده بود در مقابل تو یعنی اینطور بی دست و پا شده بود به خاک افتاده بود تکون نمیخورد پس گویا در قول و زنجیر تو باهاش برخورد کرده بودی فکر برایم فهمیدیم شد قبضت منیتوهو یدهیه منیتوهو فاعل قبضته یدهیه و اونقهو به هم عرض شده مفعولش یدهی هم یدین بوده مرگ دو دست و گردن او رو بسته بود دست بسته افتاده بود جلوی تو خب پس گویا انگار تو با او برخورد کردی در حالی که اون دست و پاش بسته کار نمی دوست بکن. انگال اسیر بود در مقابل تو. و که انما صادافتته او خوب خب این هم، این بیت که خیلی زیبا بود و ما هم قواعد او را هم حتی برای شما قفت. قبضت منیتوهو یدیه و اونقهو فکه انما سادفتهو مقلولن حال است از برای هوی سادفتهو که انما گفتم که که بوده و ما بر سرش در اومده و این ما رو میگن مای کافه که وقتی بر سر حروف مشبهتون دلتیل میاد جلیه عملشو میگیره مثل امنما یه این عمل اینم که یعنی پس یا سادخته او برخورد کردی تو با او رو در رو شدی تو با او در حالی که او دست دست است؟ آه مقلول اسیر خوب، شیرها نمیدونم میدونید یا نه معمولا دو تا ستایی حمله میکنند. این شیری هم که این زد انداخته شیر نر بوده چون گفتش یادتون باشه یال داشت یالشو مثل تاج بالای سرش جمع کرد آه گفت موقعی که میخواست بفره جمع شد جوری که عرضش بیشتر از طولش شده بود شیره نری بوده دیگه میگه این شیره نره رو تو زدی اندافتی زمین یعنی این رو به قول خودمون مرگش رو جنوی چشش آورد میگه سمعه حالا سمعه ابن و بهی. و به حالهی فنجا یو هر ولا امسه منکم محولا میگه یه شیر دیگری بود که اون دورتر بود این شیره که شیره نره بود چه شیرها اینطورییاند وقتی که یه شکاری باشه اونی که قلدرتر و گندهتره اون میخوره اونی یکی کنار واایستاده بعد که این خورد میره کنار اون یکی میاد این داشتش شیره غذا میخورد تومه خودش شماها سر رسیدی حمله کرد داستانشو دیدی بعدم تو زدی و کشتیش انداختیش سرید هیچ کاری هم در مقابلتو نکرد میگه اون شیری که پسر امه این بود واقعا نمیخواد بگه پسر امه و پسر امه یعنی شیری که از جنس این بود شیر نر دیگری که یک کمی دورتر بایستده بود و به قول خودمون از نژاد این بود که اینجا تغییر میکنه پسر امهش میگه سمعه شنید ابن امتیهی به و به حالی داستان این شیری که تو زدی انداختیش بهی و حال این شیر که چطوری با یه شلاق تو افتاد زمین و کارش ساخته شد این به گوش پسر امه او رسید شنید پسر امش خبر این شیر رو و حالوزاش رو اینو شنید چی کرد؟ فنجا یو هر پس نجات پیدا کرد یو هر در حالی که فرار میکرد هروله یه چیزی بین راه رفتن و دویدنه شیرها اگه دیده باشید گاهی اوقات راه می با تکبر و راه. گاهی اوقات هم می دوند. دیدید با چه دستها میاد جای پاپ و به اون شکلی که می دوه دست میذاره می جلو پارو میاره میذاره جاش دوباره دست رو جلو خب اون دویدنه راه رفتنشون که عادی. اما گاهی بین این دوتای سرعت راه میره مثل دوی ماراتون اونطوری میره اونو میگن هروله هروله یه چیزی بین راه رفتن و دویدن نجا اینجا به معنای شروع کرد میگه پس شروع کرد که میدوید امسه دیروز منک مهولا یعنی محولا من کرد در حالی که مهول از حال یهولو یعنی ترسید ترسوند مهول یعنی مذعور یعنی ترسونده شده یعنی خائف پس شروع کرد که میدوید دیروز در حالی که ترسیده بود از تو میگه اون شیر دیگه شروع کرد به در رفتن دیروز به جایی که بیاد حمله کنه شیرم هست ولی ننگ و قبول کرد فرار کرد در حالی که میترسید از تو در حالی که از تو بگید می میترسید پس میگه وقتی شنید شیر دیگری که تعبیر کرده از او به پسر هنبش کشته شدن این شیر که به این قلدری بود به دست تو درست این فرار کرد و در رفت در حالی که از تو میترسی بدو. طب. سمع ابن و ابنه امته به و به حاله فنجا يهر ول من كمس مهولا مهول یعنی مذعور با زال و عین حاله یعنی خاف و خوفه او در سندش یعنی زعره هون. یعنی وحشت انداخت مهول یعنی وحشت زده کسی که ترس به جانش افتاده مزعور یعنی کسی که خوف تمام وجودشو گرفته سم ابن و عمتهی بهی و به حالهی فنجا یوهر ولو منکر همسه محولا منک متعلق به محولنه یعنی مزعورن منک ترسیده بود از تو این محولن حال است از فاید یوهر بلون یوهر بلو یعنی یسره و با عجله داش فرار می کرد در حالی که از تو می ترسید. کی که امسه متعلقه به یوهر فلوس میگه وقتی شنید دیروز این شیره که چه به سر پسر پسر عمه خودش اومده ها حالا باید بگیم چه به سر پسر دایی دیگه وقتی شنید پسر عمه او داستان این پسر دایی شو که شیره بوده که تو زدیش و اوضای این رو فهمید ها نه هر ولو پس شروع کرد به دویدن در حالی که میترسید از تو دیروز شروع کرد به کار. با اون که شیر بود در ره. وای نشد. از چرا؟ چون دید ای بابا این پسندایی ما که بول ما بود این زد و کشتش من باعثم که یه چیزی گیرم فرار کرد زمعب نعمتیهی بهی و به حالیهی این به حالی به جای بهیست حال را عطف کرده به جای ها خبر او و حالش را شنید اوضاش را شنید یک قاعده بگم عطف بر زمیر مجرور باید با اعاده جارش باشه عطفه بر ضمیر مجرور باید با اعاده جارش باشه که اینجا هم افتاده بهی و به حالی شما هم تو نماز میگید و السلام علینا و علی عباد الله نمیگید و السلام علینا و عباد الله و علا عباد الله صالح خب این شیر دومی که این گفت پسر عمز فرار کرد فرار که برای شیر خیلی چیز بدیه میگه بله میگاه کنیم و عمر رو مما فررمن ها فرار رو عمر از مره مر یعنی تلخ عمر میشه چی؟ تلخ, تلخ. مم فرمنهر این از چه چیزی فرار کردیم این پسرم به از مردن میگه تلخ از آن چه مما و تلختر از آنچه چه فرار کرد این شیر از آن تلخ از آن چه که این شیر از آن فرار کرد که مرگ باشه یعنی عمر رو من الموته تلختر از آنچه که او ازش فرار کرد یعنی مرگ فرار خود فرار کردن هست فرار کردن برای شیر تلختر از مرگشه مرگ برایش شیرینتر از فراره ولی خوب این دید خیلی اوضاع خرابه در و امر رومه ما فر فرار فراره عمرو مبتدا فراروهو خبرش بعضی میگن عمرو خبر مقدمه فراروهو مبتدای مؤخره این قشنگتره یعنی فراروهو فرار کردن این شیر تلختر است از آنچه که او ازش فرار کرد یعنی مرگ فرارش خیلی تلختر بود. ناشایسته تر از مرگش میمرد می بهتر بود چون شیره و کبدت نهی انلا یموت قتیلا و مثل مردنش شد یعنی اگر فرار کنه و زنده بمونه ها ان لا یموت قتیلا اینکه یک شیری کشته نشد یک شیری در مقابل دشمن حریف کشته نشه فرار کنه این که قتلهی مثل اینه که مرد این دیگه اون شیر مرده محسوب میشه و که قتلهی و مثل این است که مرد و کشته شد چی مثل مردنشه این قتیل فعیده به منو مفعوله یعنی مقتول این که بمیرد و کشته نشه آآ شیری اگر در مبارزه کشته نشه زنده بمونه اینطور با فرار مثل اینه که مرده و که قتلهی خبر مقدمه مثل مردنشه اینکه او بمیره اما بدون اینکه کشته شده پس فرار کردنش از مرگ ترختر از خود مرگه چون توش عیب ننگ آر اون هست و اگر اون در میدان جنگ کشته نشه مثل اینه که مرده شیری که در میدان جنگ کشته نشه و از میدان جنگ فرار کنه این شیر دیگه زنده نیست مثل اینه که مرد که یعنی وقتی تسلیم میشه که فرار کنه فرار مثل اینه که مرد بلکه تازه ترختر از موزنم است و که قتلهی انلا یموت قتله حالا میگه بچه شد که میشیره فرار رو که ننگ است عیب است اشکال است قبول کرد که از مرگم ترخ داره میگه تلف و لذت تخزل جراعت خلتن و از لذت تخزل فراره خلیده میگه داستان سر اینه تلف یعنی نابود شدن تلف شدن از بین رفتن مستره دیگه تلف شدن علزی شیری که اتخذل جراعت خلتن قرار داد جرعت خودش رو خلق و خوش اونی که جرعت و زور بازو و شیر بودنش رو عادت خودش کرد اون تلف شد یعنی شیر اول شیر اول به اختزای طبیعت خودش خله یعنی خلق و خو بر اساس خلق و خوی خودش که جرعت و شجاعت و حمله و اینهاز عمل کرد تلف شد این تلف شدن او و تلف مبتدا و ازه جنب شد. نصیحت کرد شیر دومی رو که سرمبش باشه نصیحت کرد وعز کرد اون کسی رو که از فراره خلیلو شیر دومی که فرار رو به عنوان خلیل و دوست خودش کرد به فرار چسبید میگه اونی که جرأت رو قرین خودش کرد تلف شد همین نصیحت شد برای اون دومی که فرار رو همدم خودش کنه خلیل خودش کنه وقتی با چش خودش دید اون کسی که شجاعت و جرعت داشت چطور طرف شد همین نصیحتش کرد که تو فرار رو به عنوان خلیل خودت بگیر همتای خودت بگیر و در رو بچسب خلیل بچسب فراغ الخله شد یعنی خلق و خود. مشخص پس مشخص شد فقط اتخذ دو مفعولیه یعنی جعله الجرائه مفعول اول خلتا مفعول دوم دو. الفراره مفعول اول خلیدن مفهوم دوم، از یعنی جراعته جرأتش رو خوی خودش قرار داده بود تلف شد لذا این تلف شدن و نصیحت کرد شیر دومی رو که قرار داد فرار کردن خودش رو همتای خودش فرار کردن رو به عنوان دوست خود گرفت و همتا این گفتش ولش کن شیر چی چیه نمیدونم غیرت چیه و بعد چیه جون باید نجات داد شیرم هستی وقتی پای جون پیش میاد باید در, در. تلف و لذت تخزل جراعت خلطن و از اللذت تخزل فراره خلیلا حالا اینجا دیگه داره مدهوم اون روی پنه رو میکنه میگه لوکان ان مکبل الاله مقسما فناسه ما بعث الاله رسولا مبالغه بالاده کردید که از این مبالغه ها میکنن مبالغه هم وقتی خیلی دیگه از حدش بگذره چندشاور میشه علم یعنی باور گریم. میگه لوکان علم و کبل اله اگر اعتقاد و یقین تو به خدا مقصد زمن فنناس تقسیم شده بود در بین همه مردم یعنی اگر اعتقاد تو به خدا یقین تو به خدا ایمان تو به خدا اینو تقسیم میکردن در بین همه مردم به هر کسی یه اپسیلون از یقین تو میدادن با لو گفته ها یعنی به فرض یعنی اگر یقین تو رو به خداوند تعالی تقسیم میکردن بین مردم آه. همه مردم یه ذره از علم و یقین تو بهشون میرسید ما به اصل اله جواب ما به اصل اله رسول خدا دیگه هیچ رسولی نمیفرسته همه یقین داشتن به خدا میگه اگه یه سر سوزن از یقین تو بر ها بین همه این مردم یه سر سوزنی از یقین تو رو تو دل اونا میذاشتن خدا دیگه هیچ رسولی لازم نبود بفرسته چون همه مردم اعتقاد به خدا پیدا میکردن یقین به خدا پیدا میکردن همه معموم میشدن به واسطه اون یه سر سوزنی از یقین تو که در دل اونها قرار داشته یعنی تو هستی مجسمه یقین ما بعث الالهو رسولا خدا دیگه هیچ رسولی مبعوث نمیکرد الله فاعل بحث است رسولا مبعود یه نکته گفتیم اگر جواب لو مازی مثبت باشه با لام میاد اونجا داشت لجازک میلا لو لم تصادمهو لجازک میلا بیت حالا میگیم اگر ماضی منفی باشه دیگه لام نمیخواد اینجا ما به اصل اله. دیگه نگفته لما پس لوکان علم مکبل اله مقصمان تقسیم شده بود فنناس در مردم ما به اصل اله رسول شعرش خیلی جالب نیست خیلی مبالغه کرد گفتید تو مجسمه یقین به خدا علم به خدا هستی باور خدا در وجود تو در تمام سلول ها هست. اگه یه سر سوزنی از علم و یقین و باور تو به خدا رو برمیذاشتن و در دل هر کسی از مردمان می‌ذاشتن همه به خدا باور و ایمان پیدا می‌کردن و خدا دیگه نیاز به فرستادن هیچ رسولی ندارد خب بیت بعد فلقد عرفت و ما عرفت هویدتن و لقد جهلت و ما جهلت خمولا باز اینم از اون مبالغه هاست دیگه معمولا این تو چیزو در مورد خداوند به کار می میگه ولقد عرفت تو شناخته شدی بین من همه تا میشناسم اما وما اونفته حقیقتا اما واقعا تو رو نمیشنسن. یعنی حقیقت تو یه چیزیه که اونها بگید نمیتونند تو به عقل و فکر اونها نمیای. همه تا میشناسن به بزرگی عظمت شجاعت خیلی. ولی یه ذره از شناخت تو نصیبشون نشده تو بیش از شناخت مردم لقد جواب قسم یعنی به خدا قسم پس بنابراین فلقد عرفته تو شناخته شده هستی تو معروفی کسی نیست که تو رو نشناسه و ما عرفت حقیقتا ولی کی حقیقت تو رو درک کنه تو شناخته نشدی دی شناخته شدنی حقیقی حقیقتا شناخته نشود این حقیقتا مفعول و مطلقه یعنی ما عرفت معرفتا حقیقتا تو موشنافته واقعی رو به اصوات بد نداره و نخر جهل پس مردم تو رو نمی‌شناختن یعنی واقعا تو رو کنه وجود تو درک نکردن اما و ما جهلت خمولا و تو ناشناخته بین مردم هستی نه از جهت اینکه تو خمول داری یعنی ناشناخته ناشناختگی از طرف تو نیست بلکه ناشناختگی از معرفت اونهاست که اونها معرفتشون نسبت به تو ناقصه تو همه چیز ریانه درست چون؟ کوتاهی از تو نیست پس تو مجهولی بین مردم و مجهول نیستی از جهت خمول یعنی از جهت ناشناختگی تو بلکه از جهت عدم شناخت اونها ولی تو واضحی تو مثل نور هستی نور هست اونا پورن بینن تو مثل نوری وسیع اونا نمیتونن ببینن بلغت جهل داشت پس تو واقعیتت مجهور مونده حقیقتت مجهور مونده و مجهول موندن تو از جهت کوتاهی تو بگید نیست خمول تو نیست شد. یعنی عدم ناماوری تو نیست تو مقصر نیستی اونها به قول خودمون نمیتونن تو رو بشناسند مخمول به کسی میگن که به قول خودمون اسمش سر زبون ها نیست شناخته شده نیست تو از جهت خمول که ناشناختگی تو باشه نیست که مشغول شدی شینا بلکه از جهت اینه که گیرندگی اینها ضعیف نسبت به درک تو و ما جهلده خمولن این خمولن مفعولون لهه برای جهلده و تو مجهول نشدی از این لحاظ که تو ناشناخته ای نه تو همه چیز معلوم عظمت غیبت اینا نمیتونن رو بشنسن خب اینم بیت بعدی که خیلی خیلی مبالغه جا معمولا در مورد خدا میگن میگن خدا یا همه تو رو میشناسه ولی کی که حقیقت و کنه تو رو درک کنه تو کجا و فهم ما کجا ما عرفنا که حق معرفتت ما تو و این نشناختن تو به جهت این نیست که تو ناشناسی الله و نور و سماوات و تو نوری همه ما کوریم نمیبینیم ما باید ذره بینایی پیدا کنیم ولو تو در همه جا هست. نتقد به سعو نتقد به سعو دده حمام همامو تقنن. و به ما تو جش جیادو سهیلا باز داره مبالغه میکنم سعدد, سعدد سعدد یعنی آقایی آقایی آقای اسم مستره از سیادت میگه نطف میکنه به آقایی تو بزرگی تو عظمت تو الحمام، حمام، جمع حمام است همامتون یعنی یک کبوتر الحمام الفلام داره تا افتاده مثل البقر خب الحمام یعنی تمام کبوتران تمام کبوتران نطخ میکنن میگه این همه کبوترا که صدا میکنن اینها همه دارن صدا میکنن به آقایی و سالاری تو تقنیند در حالی که میخونند صدای کبوتران که بلند است اینها دارند آقایی تو رو میخوانند و کوک میکنند همه کبوتران متقنی و آوازخانه به آقایی و سالاری تو هست. تو جشموها یعنی تکلفوها خب پس میگه آقایی تو سالاری تو بالا گفته شیه گفت تو مشهوری مردم نمیتونن بفهمن ولقد جهلده و ما جهل خانون و ولقد عرفت و ما عرفت حقیقتا میگه تمامی کبوترها هم تو رو میشنسن و سالاریت همشون دارن میخانند یعنی عاقلین که بگذر همه غیر عاقلین هم دارند آقایی تو رو میگن نتقد به سعدت کل همامو تغنیند. این تقنیان حال است از برای الهمام یعنی متقنیتن در حالی که آواز میخونن همشون دارن سالاری تو رو میکرد و به ما تو این به ما تو ها جای به سعدده الجیاد اتو جای الهمامه سهیلا اتو جای تقنیانه سهیل شیه کشیدن اسبه خوب یعنی نتاوت به ما تجشمه ها نطق میکنه به آنچه که تو تکلیف کردی به آن به گردنش گذاشته. ال جیاد جیاد جمع جواده جواد یعنی اسب خوب و این اسبان میدان جنگ اسبان خوب دارن نطق میکنند با آنچه که تو به اونها تکلیف کردی که تو میدان جنگ بر چطوری حرکت کنید چطوری درست سهیلا با این شیحه کشیدنشون این شیحه کشیدن اینها نه اینه که دارن شیحه بی خودی میکشن. نه با این شیحه کشیدن دارن چی میگن؟ دارن اون چیزهایی رو که تو یاد دادی و تکلیف کردی به اینها تو میدان جنگ دارن اونو بیان میکنن پس میگه اگه کبوترها دارن میخونن اینها دارن آقایی و سالاری تو رو آواز میکنن اگر اسبهای خوب تو میدان جنگ شیهه میکشن hey! این قصبان خوب دارن نطخ میکنن به آنچه که تو تکلیف کردی به اونها تو به اونها یاد دادی عجیب است پس میگه شیحه اسفاند در میدان جنگ بیان تکالیف توست نسبت به اونها دارن اونو دوره میکنن تکلیف رو بیان. خواندن کبوتران هم بگید آواز خواندن به آقایی و سالاری و زیادت و بزرگواری پس به ما تو جشت ها یعنی بلذی تو جشت ها. به چیزی که تو تکلیف کردی به اونها موها میخوره به جیاد تو جشت ما زمین انتش فائلش یعنی به ما تو جشت ها یاهو به چیزی که تو به اونها تکلیف کردی نتفت این به ما گفتم متعلق به سعداد دارن تکلیف تو به خودشون رو نطف میکنن اسبان با شیه کشیدنشون و دارن آقایی تو رو میگن کبوتران با آواز خوندن خودش. اوه اینم مالی پس حیوانات هم همه دارن بیان به قول خودمون بزرگی تو رو میکنه ما کل من طلب المعالی نافذان فی ها ولا کل الرجال فحولا میگه تو مردی هرکی دم از مردی بزنه که مرد نیست که خوب میگه ما کل من طلب المعالی معالی یعنی بزرگواری ها فزائل میگه نیست هر کسی که طلب میکنه بزرگواری ها و عظمت ها و فضائل رو، نافزن فیها اجرا کننده در اون نفروز کننده در این کل اسم ماست ما مشابهتون می نافزن خبرش فیها ها, ها برمیگره به معالی متعلق به نافزن میگه نیست هر کسی که طلب میکند فضائل را نفوظ کننده در ون فضائل مردم خیلی دم میزنند از کرم شجاعت مردانگی فلان دلیل نیستش که در این سفات هم نفوذ کردند و رفتند پس هر کسی دم میزنه از معالی نفوظ در آن معالی ندارد اما تو دم نمیزنی و مظهرش است ما کل من طلب المعالی نافظا فیها المعالی مفعول طلب است ولا کل الرجال فهولا و تمام مردان و عالم فهول نیستند فحل یعنی شطور نق یعنی به کسی که به قول خودمون نره میدان جنگه مرد میدان میگن مرد مرد میدان جنگه به این میگن فهد میگه و همه مردان هم مرد نیستند پس هر کسی دم میزنه از فضائل نفوذ در فضائل ندارد تمام اونایی که دم میزنن نفوذ ندارن این نیستش که حالا یه کسانی دارن برای خودشون ادعا کنن فقط حرفه و از طرفی همه مردان هم مرد نیستن اما تو یکی هستی ولا کل رجاله این کل رجالت به اون کل قبلیه فهولن ات به جای اون لا هم تأکید ما رو میکنه درست شد؟ این ما به منای لعصه یعنی لعصه کل من تلب المعالی نافذن فیها و لعصه کل رجاله فهولا و همه مردان هم مرد نیستند این قصیده خیلی زیبا بیان شد تمام شد قواعد گرامر لغت غیره بیان کردیم شعرخانی و فهم شعر رو با شما تمرین کردیم انشاء الله قصیده بعدی یه قصیده خیلی خیلی زیباتر و مهمتری است لهکل امرئ ما تعودا از هر دیگه سر ساعت خودمون روز چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود همتون رو به خدا می‌سپارم و موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات